سلام به شنونده های کانال هزار افسان. از کتاب شست افسانه های خاندانی ایرانی داستانی رو بهتون تقدیم میکنم به نام شاه سنم. امیدوارم تا آخر این داستان همراه من باشید. یکی بود یکی نبود. روزی روزگاری پیرزنی بود که سه تا دختر داشت. دختر نگو شیر و شکر. یکی از یکی قشنگتر. یکی آشپزی میکرد و اون یکی خونه رو جارو میزد. یکی هم قالی میبافد. با هم میخوردن، کار میکردن و خوش بودن. خونه پیرزن هفت تا در داشت. هر شب یکی از دخترها قبل اینکه به بخوابه درها رو گفت میکرد. پنجره ها رو هم میبست. یه شب نوبت دختر سومی سو بود. دختر سومی سو شاه سنم خانوم پنجره ها رو بزد. شیشتادرم گفت کرد اما اونقدر خوابش میومد که در هفتمی رو نبست مادر و دخترها دراز کشیده بودن و تازه میخواستن بخوابند که دیو زشتی از در هفتمی وارد خونه شد و صدا زد هو ساب خونه کو پیر زن گفت ای داده بی داد بیداد سنمی هفتدر و بستی سنمی یه در و نبستی سنمی بعدم رفت تا یه جوری دیو آروم کنه. آی دخترا، شکر خدا مهمون رسید. بفرمایید دیو صداشو انداخت به سرشو. گفت کو غذای گرم؟ همین جاست؟ کو جای نرم؟ همین جاست؟ دیو شامشو خورد و توی رخت خواب دراز کشید و داد زد. یکی بیاد برام قصه بگه و شپشای سرمو به جوره. تا خوابم ببره دختر اولی کنار دیو نشست براش قصه گفت و سرش رو جورید کم کم چشاش گرم شد و خوابش برد دیو اونو روی کولش انداخت و مثل برق و باد فرار کرد و وسط بیابون دختره رو خود شب دوم دوباره وقت خواب شد شاسنم پنجره ها رو بست درار رو قفل کرد اما تا رفت که به یهو یادش اومد که در هفتم و نبسته دیو زشت از در هفتم وارد خونه شد و صدا زد هو ساب خونه کو پیرزن خیلی ترسید دست و دلش لرزید. زد تو سرشو گفت ای داد بی داد سنمی هفته رو بستی سنمی یه در و نبستی سنمی بعدم رفت تا دیب وحشی رو آروم کنه ای دخترا شکر خدا مهمون رسید بفرمایید دیو صداشو انداخت به سرشو گفت کو گرم همین جاست کو جای نرم؟ همین جاست دیو شامشو خورد و توی رخت خواب دراز کشید و داد زد یکی بیاد برام قصه بگه شپشای سرمو بجوره دختر دومی کنار دیو نشست براش قصه گفت و سرشو جوری کم کم چشاش گرم شد و خوابش برد همین که خوابید دیو اون رو زیر بغلش گرفت و مست برق و باد فرار کرد و وسط بیابون دختره رو خب شب سوم شاه سنم و رو بست و تا رفت به دیو رسید و از در هفتم توی خونه پرید شاه و برداشت و بدون اینکه چیزی بخوره و حرفی بزنه به طرف بیابوندوید. دوید سنم پرسید دیو جان اصلا نترس. چرا فرار میکنی؟ من خودم همرات میام. دیو آروم شد و خندید. دست شاه گرفت و اونو به قار خودش برد. به سنم گفت تو هم اینجا بمون. من میرم پدر مادرم و میارم و تو عروسشونو ببینن. دیو یه دست کلید به شاه داد و گفت موازه به همه چیز باش. بعد از قار بیرون رفت. اون وقت شاه سنم همه جا رو گشت و قفل همه ی بستر رو باز کرد. هر کس تو قار اسیر بود آزاد شد. شاد شد. شاه سنم توی یک صندوق رفت و به اونا گفت صندوقچه رو توی رودخونه بندازید. اونا هم صندوقچه رو به آب انداختن و همگی از قار دور شدند. شب که شد دیو برگشت و دید همه چیز به هم ریخته های کشید و هوی کشید و رفت تا شاه سنم رو پیدا کنه. صندوقچه روی موج بالا و پایین رفت و کنار قصر شاه رسید. قلاما سندقچه رو از آب گرفتن و پیش شاه بردن. صندوقچه گوشه اتاق بود که شب شد و سنم از صندوقچه بیرون اومد. دید چه جای خوبی، چه خوردنی های کمی از اونارو خورد و توی صندوقچه برگشت. میخواست در صندوقچه رو ببنده که صدای جرق و جروق توی اتاق بیچید. پسرشا صدا رو شنید بیدار شد و سنم دید. یه دل صد دل عاشق شد و گفت نمیذارم از اینجا بری. تو باید عروس این قصب بشی. شاهزاده شاه سنم به پدر مادرش نشون داد. شاه سنم همه رو برای اونا تعریف کرد اول همه جا رو دنبال شاه سنم و همینطور که بو می کشید به قصر رسید وقتی شاه سنم دید فکر کرد چجوری اونو اسیر کنه اول یه قوچه بزرگ از چپون دزدید بعد داخل پوست قوچ رفت و وارد قصر شد شاه سنم توی باغ گردش می کرد دیو قوشنما به اون حمله کرد شاه سنم فریاد کشید و کمک خواست. شاهزاده با سربازاش اومد روی قوچ پرید و دیو پوست گوچ رو از روی خودش برداشت و نعره کشید. شاهزاده نترسید و با یه ضربه دیو کشت. شاه خوشحال شد و یه نفس راحت کشید. غلاما رو فرستاد اونم مادرشو آوردن قصر. هفت شب و هفت روز به زن و به کو و عروسی بود شربت و شیری و شام قصه ما شد تمام سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها از جادوگرها.